بعضی خیال میکنن که اگر امروز پلن دولت مستکبر چه در اروپا چه در غیر اروپا نسبت به جمهوری اسلامی حرفی میزنه یه چیزی میگه یک اظهار نظری میکنه که اهانت آمیز به جمهوری اسلامی است این معناش تنزل رتبه جمهوری اسلامی نه اینا هر وقت توانسن کردن من قبول نمی کنم حرف اون کسانی رو که تزور میکنن ملت ما به خاطر پایبندی به مبانی و اصول خود در دنیا خار شده است از،, از چشم افتاده است ابدا وقتی که امام و بزرگوار بود دشمنی ها زیاد شد زیاد بود بر خاطر موازه قاطع امام هرچی ما مواضعمون ضعیف تر بشه عقب نشینی میکنیم اون طبع چهرهشون متوسم میشه به ظاهر البته جلو میاد یک روزی ما در خطابه های مسئولینمون مناقب امریکا ذکر می شد همون روزا رئیس جمهور وقت امریکا با سبکسری تمام ایران رو به عنوان محور شرارت معرفی بدون اینکه ما تبلیغی در دنیا کرده باشیم نام انتلاف و نام امام دنیاییست نام رو پرا گرفت. در هن نقطه ای از دنیای اسلام هر جا مسلمانی زندگی می کرد اگر که میرفت رفت می نام امام، نام انقلاب معارف انقلاب، شعارهای انقلاب در اونجا مطرح این استقبار رو کرسون دشمنی ها با ما به خاطر اینه یه ازهی می دشمن تراشی نکنید دشمن تراشی عدم وجود و خوبیت جمهوری اسلامی نکنه اصل این که یک ترچنی به نام اسلام بلند بشود. ملتی با شعار محنوییت در دنیا اعلام وجود بکنه اعلام موجودیت بکنه خود این جلب دشمنی میکنه دشمن تراشیه بیشتری از دیمانه کردید شما وقتی که دائیه حکومت معنوی و دینی دارید وقتی میگید مردم سالاری دینی یا مردم سالاری اسلامی این خودش اول دعواز فروانه های تاریخ خوب در مقابل ارزش‌های های انسانی قرار دارن دنیا دست ایناست مبارزات علیه نظام اسلامی را، کارشگنی ها را، کارشگنی ها را همیشه علیه ما شروع کردن، ما دفاع کردیم، منتا دفاع جانانه کردیم و بحمدلله و بحمدنه و بحمدنه. وستی به یک قدرتی متکی بود این قدرت قدرت سلاحه مادی و بمب اتمو نمیدونم اینا نیست این قدرت یک قدرت معنوی است این اتکای به خداست این اساس قضیه من و شما بنده بیشتر از شما محتاجیم به اینکه نیتمون رو دلمون رو هدفمون رو بیش از پیش خدایی کنیم اگر این شد، مشکلات حل خواهد شد اگر این شد، ما پیش خواهیم رفت اگر این شد دشمن از غلبه بر ما ناامید خواهد شد امید خواهد شد.